ای مباش ما باش یک دم خالیز اشق و مستی وانگه برو که رستی از نیستی و هستی گر جان به تن ببینی مشغول کار او شد هر ای که بینی بهترز خود پرستی با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش بیماری اندر این ره بهترز تن درستی در مذهب طریقت، خامی نشان کفر است داری طریق دولت چالاکی است و چستی تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی یک نکتت بگویم خود را مبین که رستی در آستان جانان از آسمان می اندیش که از اوج سر بلندی افتی به خاک پستی خارر چه جان بکاهد گل عذران بخواهد سهل از تلخی می در جنب ذوق مستی صوفی پیاله پیما حافظ قرار پرهیز ای کوت هاست اینان تا کی دراز دستی